اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی با تکانه های جهانی با سیاست های آمریکا و غیر آمریکا زیرو رو شود. اقتصادی است متکی به مردم